سلام ارزو کنم خدمت شنوندگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست حقوق من خوش آمدید در این قسمت در خصوص حزینه های اجرا صحبت میکنیم سوال میشود که ما محکوم شده این و در اجرای احکام هم حاضر شده این و به هر ترتیب حکم اجرا شد همبال ما توقیف شد فروخته شد علاوه بر آنچه که محکوم شده بودیم که پرداخت کنیم به ما می گویند که حزینه های اجرا را هم باید بدهید بله تمام حزینه هایی که در اجرا می شود بر احتی کسی است که محکوم شده است و به اون محکومان علیه می گویند بنابراین کسی که محکوم می شود و کارش به اجرای احکام می رسد علاوه بر این که آن مبلغی را که محکوم شده است باید پرداخت کنند، باید حذینهاییم که در اجرا شده است را پرداخت کنند و باورت حق اجرا یا حقوقم هم. هزینه تعلق می‌گیرد. یعنی این که شما به خاطر اینکه بد اهدی کردید و مثلاً دین خود را پرداخن کردید و باعث شدید که تقلب کار به داد کاه مراجعه کند، همکاری می‌گیرد و کار به اجرا یه کم بررسیت. علاوه بر این که تمام هزینهایی که تراففرای گرفتن حقوق کرده است را به او باید بدهید، در واقع هزینه‌ی اجرا حقوق را هم باید پرداخت کنید. آیا این حزینه یک حزینه یه ثابتیست، پاسخ منفییست، مورد به مورد و با توجه به نوع حکمیزان آن مشخص می شود و همچنین با توجه به اقداماتی که در اجراس صورت گرفته است و در نهایت عددی که مشخص می شود از شخص محکمون علیک یعنی کسی که حد به زیانه اوست دریاف قاعد شد